بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صلاة والسلام على اشرف الانبیائی و سید المرسلین و آلیه اجمعین اما بعد سو من جلسه هست که در فزور شما هستیم با نشانه های روز قیامت ما چند حدیث زکر دیم حدیثه بل حدیث عبدالله بن مسعود بود خمسون قدم خنجتا از علامات ها هست که گذشته علامت ماه، علامت جنگ بعد و دیگر علامت که بود بعد از اون رفتیم به بحث اعداد ستن بین یاده دومین حدیث منتظر شیشتا از علامت ها باشید یکی از اونها مرگ رسول الله و فاطر رسول الله علیه السلام بود قبل از اینکه بریم و بقیه حدیث پنج مورد دیگر چند تا اشکال هست در ذهن ایجاد میشه و اونم این که چه فایده می چه نتیجهی داره وقتی که ما بدونیم که ما از وسط نس شده یا نس نشده خب یک معاجزه روح داد در زمان اصحاب اعلمه هم روایتش کردن در کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم نقش شده بهمون رسیده چه سودی داره برای ما آیا واقعا معنی آیه قرآن افترابت الساعت و انشق القمر همینی که روخ داده دیگه روخ خواهد داد یا نه چه میشه در آینده این بحث هست این اشکالها هست که در ذهن انسان مطرح میشه و انسان باید جویه پاسخ این اشکالات باشه اگر یادتون باشه جلسه گذشته من چند تا حدیث را در بحث نشانه ها گفتم با اونم بعثت رسول الله علیه السلام که دو تا حدیث بود در این با. در صحیح یکی از اون احادیث اشاره به سبابه و انگشت وسط بود که رسول الله صلی الله علیه وسلم اشاره می که که بین آدم تا من این قد گذشته. بین من تا قیام ساعت این قد. ما بقیه انگوشت بزرگیه. در روایت دیگر بین آدم و رسول الله علیه الصلاه و چه چقدر بوده؟ از وقت از از مغرب تا از آن هست. تا وقت هست. ما بقیه هست و مغربه. ما بقیه هست و مغربه. وقتی خدا من میگه که اختربت ساعت قیامت نزدیک شده به این منظور نیست که پردا یا پس فردا هست اولا ما باید تو زهن خودمون بیاریم که نزدیکی نزد خداوند با نزدیکی نزد ما فرق میکنه یعنی ساعتها وقتها زمان نزد ما با نزد خدا فرق میکنه مثلا خودمان در قرآن میگه این نه هم یارو نهو بعید هست. اونها دور میبینند یعنی خیامت و مر را دور میبینند و نراه و قریبا ما می بینیم. پس زمان ما اولا مطرح نیست اون زمانی که مطرح زمان قدابندیه یعنی از بعثت رسول الله تا قیامت چیزی نمونده و همچنین از وقتی که ماه دو شده تا قیام ساعت چیزی نمونده به زمان قدابندیه و همچنین به زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتیم اشاره میکنه به اون انگشتان من یک مثالی میزنم برای تقریب ذهنی برای اینکه ذهنمون باز بشه این مسئله را خوب تقهیم بشیم مثلا به من به یک شخصی قرض میدم مالی پولی رو قرض میدم یک میلیون به یک طرف قرض, قرض میدم به مدت 50 روز چلا پنج روز از این قرض بازشت روز چلا پنج روز و بانشخص میگم مؤعد پرداخت نزدیک شده چقدر مونده؟ پن روز پنج روز باقی مونده چلا پنج روز گذشته. این نزدیکی به مقدار چی هست؟ به مقدار اون قد کرده چی دیگه چیزی باقی نمونده خیلی کم باقی مونده این یک مسئله مسئله دومم اینه که خداوند یک سری علامت ها و نشانه ها را بر دستان صلی الله علیه وسلم جاری ساخته تا این که ما یقین داشته باشیم که اون چیزی که از آینده خبر میدهد حقیقت هست یه سیری خبرها میده رسول علیه وسلم فلان واقعه رو خواهد داد آلا مرگش علیه السلام یا فتح بیت المقدس هست یا طاعونی هست که رو خواهد داد میاد اینا بحث رو خواهیم کرد رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر داده از قبل و این چیزها روح داده روح دادن این چیزها که بشریت می‌بینه و گفتیم علامتاش هاشم هست مثلا انشقاق ما بله. قدیم ها شاید مثلا یک کسی تشکیک وارد میکرد در آیه قرآن که انفلاق ما واقع نشده شده میپذیره چون دلیل نداشت که اثبات بکنه آرا حدیث یا میگفت احاده یا اینکه صحابه همینطوری روایت کردن تشکیک وارد میکردن ولی گفتیم امروزه که دیگه مجال نیست تلسکوپ ها هست سایت ناسا هست اثر ها هست دیگه واقعیت نمیشه این کار کرد بس این شکاف وسط ما هست کجا اومده کی میتونه بگه از کجا اومده کسی هست که ادعا کرده که این, ش... این شکاف قسط ما از خجا آمده این شکاف رخ داد و خداوند هم خبر داده بود که رخ خواهد داد الان این رخ دادن اشتبارت برچیه همانطور که این قضیه رخ داد قیامتم رخ خواهد داد یعنی روز بعثی هم هست اینها نشانهای نشان های هستن یعنی اون نشان های که دلالت که یک نوع علامتی هستن یک علامه گفتن علامت گفتن نشانه نشانه روز آخرت چطور نشانه روز آخرت اینیه که رسول الله خبر داده به بقوع پیوسته قیامت همونطور به بقوع خواهد پیوست این نوع تشابه بین نشانه ها و بین خود قیامت نشانه ها علامت ها هستن بغتر همین علما وقتی کتاب می نویسن در این باب میگن اشراط الساعة اشراط اینه علامتها یا علامات ساعة کبرا یا صغرا نشانها. نشانه ها نشانه های قیامته نه اینکه اینها مثلا بالفرس یه چیزهایی باشند که همینطوری مثلا یه اخبار اخبارها که شده و ما همینطوری این خبرها را بخونیم نه این مصداق وحی صدق نبوت مهر تصدیق بر حرف و سخنان رسول الله صلی الله علیه سلم که این که حرفش رفتارش کردارش بی خود نبوده با دلیل بوده با مدرک بوده از خودش حرف نمیزده بلکه پیامبری مبعوث بوده از طرف خداوند یک تار. خیلی از مسالها از خداوند میزنه یعنی خداوند وقتی که میاد یک مسال را بزنه برای اثبات وجود قیامت لازم نیست اون مثال مثال پیچیده باشه قرآن خیلی ساده هست هم تلاوتش ولا قد یسّرناه للذکر آسانه برای ذکر آسانه هم برای فهم مثال های پیچیده نیست حساب و کتاب های پیچیده ای نیست خیلی واها ما برای اثبات قیامت مثلا در فلس خداوند میگه وتر الارض هامیده فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت زمین وقتی میبینید آب روش میریزید درخت بیرو میاد خلوات ساده است سخت مگر خب چی می‌گفتم خدا برایش همینطور که این درخت بیرون میاد شما روز قیامت بیرون خواهید من اول یک شخص بیاد بگه که این مثال مثلا خیلی ساده بود، واحد بود. این چه مثالی است خداوند می‌زند؟ خداوند وقتی که مثال به خاطر که ذهن ما روشن بشه، همینطور که این دانه از هیچ به وجود ما روز قیامت هم ما همینطوری شما به وجود خواهید فکر نکنید که مردی دیگه زندگی اینی است، دیگر نیست، نه. زندگی دیگه دوباره هست دوباره شما مثل همذراک می روی قیامتی هم هست بریم ادامه می با این فواصله سری اشکالات هست حالا که دوستان هم اشکالاتی داشتن در عرض همین دو اول مبحث سعی میکنیم که اون اشکالات رو بگیم یاد بکنیم بالاخره چیزهایی از اصلا شاید بیفته که در هر جلسه اون نقاط رو بگیم ضمنی حدیث دومین حدیثی که ما در این مطلب داشتیم حدیث 6 تا از نشانهای قیامت منتظرش باشید گفتیم یکی از نشانها وفات رسول الله علیه و بود از جمله نشانها فتح بیت المقدس بود فتح قدس که در سال 16 هجری توسط عمر بن خطاب فتح میشه و یهود و نصارا را از اونجا بیرون میکنه و مسجدی را در اونجا تاسیس میکنه فتح شد یک خبری داد رسولتا علیه صلی اللہ علیه که می شود. قبل از اینکه قیامت برپا بشه. ای مسلمانان مطمئن بشید که سرزمین بیت المقدس، سرزمین قرس آزاد خواهد شد. یک دلداری هست، یک تسلیت، یک بشارت و یک نشانه و علامتی از علامتهای نزدیک شدن قیامت. حرف رسول الله حق. مهر نبوبت بعد, بعد این حدیث هست. شد رخ داد و بازم رخ خواهد داد بار دیگر اون روزی که یهود پشت اون طرف رود و مسلمان طرف دیگر که میرن به پشتن یهود تا جایی که سخر فریاد میزند بیا پشت سر من یهودی هست او را بکش زمین این کره زمین روزی هم خواهد اومد که شر یهود پاک بشه بشارت ها هست نشانه های قیامته الان یک شخصی بیاد بگه خب چطور رو خواهد داده یک صخره بیاد صحبت بکنه بله خیلی از چیزها هست درقش تصورش برای پیشینه ها مشکل بود ولی بله برای ما قابل حضمه وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر دادن کسانی سوار زینه هایی خواهند شد زنان سوارن چندی ندارد. زینه هایی مثل سروجی مثل اون سروجی که پشت سر، پشت چطور میگذارن میگذارم پشت دیوار شطور خب یک نفر دو نفر نه کسان و اشخاص خب الان ما میبینیم ماشینا هستن چندین نفر سوار سوار بشن حالا قابل هضم برای ما یا نه حالا برای اصحاب شده؟ قابل هضم نبود نمیدونست ولی قبول داشتم که رخ خواهد داد داشت. یقین داشتن، هر تنووت حقه چطور روز قیامت اون صخره به سخن در میاد؟ الله اعلم معجزاتش. خداوند قادر به هر کاری هست مگر اون تنه نخلی که ما گفتیم اینجا صحبت ازش شد که فریاد زد گری و, گر، و زاری کرد ان مسی صداش رو مگر زبان داشت. چطور از حافظ شد؟ کسی میتونه هضمش بکنه اگر این خبر نبود؟ اگر معجزات قرآنی نبود در که اون طفل اون بچه که ایسا بود علیه سخن گفت در گهواره ما نمیتونیم باور بکنیم خیلی ها تشکیق وارد میکنه ولی روح داگه نداز چودون یک بچه تازه به دنیا اومده سخن میگه هر میزنه بپا از مادرش میکنه حرف از خدا میزنه بشارت میده که من پیامبری خواهم بود کی بهش گفته کی بهش خبر داده ممکنه یا ممکن نیست؟ کنن. چون خدا و ما تشاؤون الا این يشاء الله اگر خدا بخواد میشد. دست ما که نیست. خدا بخواد میشد. همون طور که گفتید این بخواهد رخ داد. پس فتح بیت المقدس یکی از نشانه های قیامت که رخ داده و رخ خواهد داد. بازم بار دیگر بازم بحثا پیرامون این قضیه هست بازم رخصه بیشتر بازسازی کرد ولی که یکی از انعاماتی که رخ داده خداحبیتون مقدسه و دومی دو دست الله صلی الله علیه و سلم میشه، ثمّ موتانی آقده فیکم كَقَعَاسٍ غنم و در وَكَعْقَاسِ الغنم مرگ‌های مرگ‌میرهایی هست که مثل اون ویروسی که توی بینی حیوان میره، حیون در جا سخت می‌زنمی، یا فس می‌میره. این چیلین مرگ های قهد اومد مردم یه دفعه میمیرن و شخص نیست ببایی میاد مثل طاعون طاعون معروفه در سال اشدهام هجری در زمان عمران و خطاب که ابو عبیده از کبار صحابه رسول الله صلی اللہ علیه وسلم در قرص در اون سرزمین عماس دوچار طاعون میشه که گفت که می‌گذر در کتابهای تاریخ یاد میکنن که 25000 نفر 25000 نفر از صحابه و تابعین در اونجا در به بس سبب اون طاعون رفتن. بگفت خبرات مرغ‌های انجنینی و وای میاد طاعون میاد همه رو در بر هیچ کس جا پیدا نمیکنه. کسی هم حق نداره از دایره اون فتنه خارج بشه. اون منطقه ابتلا و امتحان خارج بشه. رسول الله صلی الله علیه و آله از قبل خبر دادن و گفتنم به اصحاب اگر چینی شد دیگه خارجم نشید همون کاری که اصحاب کردند تا اینکه منتقل نشه این چینی و وباها این چینی ابتلاها انتقال میشه این یکی از های نبوت چیزهایی که رسول الله صلی الله علیه و خبر داده و تا و تا تا اون وقتی که رسول الله بود علیه الصلاه روح نداده بود بعد از حیاتش گفتاد شرعی مطلب از که در این حدیث هست، ثم استفاضه المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيضل ساقطا مالو ثروتو درهم و دینار زیاد میشه صد دینار داره شخص کسی نیست ادش تحویل بگیره تلا میره به شخص قرار نمیکنه ناظم نداره پول میخواد چیکار بکنه این چیزی هم ما در حدیث علی بن حاتم داریم در صحیح بخاری مسائلی را زد میکنه رسول از جمله كسراء اگر خدا به عمری بده خواهیدی که ما مالک كنوز ما مسلمان ها کسرار را فتح میکنیم و مالک کموز کسرا میشیم یعنی اون جنجهای بزرگان فرس ما صاحبش میشیم شد نشد بین صحابه تخسیم شد تخسیم نشد تخسیم شد در زمان عمران خطاب چی شد فتح نشد بطر المقدس فتح نشود دولت فرس ایران جنجهای پادشاه ایران به دست صحابه نیفرد پس این از مستادهای نبوته که ان جلسات بعد این مستادها و این تاییدهایی که بر نبوته محمد علیه الصلاه و السلام هست ان شاء الله اضافه کنیم داره به پیگیری خارج و, و, و اخره دعوان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و علی آل